سباب تهنیت پیر می فروش آمد که موسم ترب و عیش و ناز و نوش آمد هوا مسیح نفس گشت و باد نافگ و درخت سبس شد و مرغ در خروش آمد تنور لال بر فروخت باد بهار که قنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد به گوش خوش نیوش از من و به اشرت کوش که این سخن سهر از حاطفم به گوش آمد ز فکر تفرق بازای تا شبی مجموع به حکم آن که چو شد احرمند سروش آمد ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد ز خانقاخ به میخانه میرود حافظ مگر ز مفتی زهدریا به هوش آمد